هزار افسان به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه‌ها روایتی ساده از زندگی و لحظه های تلخ و شیرین آنند که به زبان ساده، روان و زنده مردم کوچ و بازار آمال، آرزوها، بندیشه های مردمان هر سرزمین رو بیان می‌کنند. شفاهی بودن، تنوع بیان، و انعکاس بقایای اساطیر و آداب و سنن گذشته از ویژگی‌های مهم و بارز دنیای افسانه است. در این برنامه افسانه ای ایرانی براتون نقل می‌کنم به نام افسانه احمد ترسو برگزیده از کتاب افسانه‌های مردم ایران به انتخاب و بازنویسی خانم جمیله فراحانی امیدواریم که از شنیدن این افسانه لذت ببرید. در روزگاران قدیم مرد ترسوی زندگی می کرد که به احمد ترسو معروف بود مرد افسانه ما علاوه بر ترسو بودن در تمبلی هم لنگه نداشت اون اونقدر تنبل بود که ساعتها یه جا می و از جاش تکون نمیخورد. وقتی آفتاب بالا می اومد، زنش بهش می گفت مرد یه تکونی به خودت بده بیا زیر سایه اما احمد تکون نمیخورد و میگفت، ای بابا، سایه خودش میاد، خلاصه. احمد افسانه ما از بس ترسو بود، مردم برای خنده و به تنه به اون پهلمون احمد میگفتد. اون نه از خونه بیرون میرفت و نه دست به سیاوش و سفید میزد، فقط کارش شده بود خوردن و خوابیدن. برای همین، روز به روز هم چاق و چاقتر میشد روزها و هفته ها میگذشت و احمد از جاش تکون نمیخورد. تا اینکه بالاخره روزی زنش از دست اون خسته شد و احمد رو از خونه بیرون انداخت و گفت دیگه حق نداری بیای تو این خونه. مردم از دست تنبل برو برو هر وقت دست از تنبلبازیات برداشتی برگرد. احمد رفت و رفت و رفت تا به بیابونی رسید. چون خسته بود، درختی پیدا کرد تا زیر ساگه اون کمی استراحت کنه و چرتی بزنه. اما با خودش گفت، نه، بهتر نخوابم، ممکنه دیوی، اجدهایی، دررندهی، خزندهی، چیزی بیاد سراغم و پارم کنه و... یه دفعه چشم احمد افتاد به یه چماغ بزرگی که زیر درخت بود، فکری به نظرش رسید زغالی پیدا کرد و روی چماق نوشت با این چماق هزار نفر رو کشتم دو هزار نفر رو زخمی کردم و سه هزار نفر رو فراری دادم بعد چماق رو بالای سرش گذاشت و گفت خیلی الان میتونم با خیال راحت بخوابم بعد چشمش بست و به خواب امینهی فرورند ساعتی گذشت و احمد ای ما همچنان تو خواب بود از غذا دیوی از اونجا گذر میکرد احمد رو که دید به طرفش رفت تا اون رو یه لهمه یه چپ کنه اما وقتی نوشته روی چماغ رو دید و به هیکل درشت و چاق احمد نگاه کرد ترسید و پا به فرار گذاشته. رفت و رفت تا به دیو دیوها رسید و با آب و تاب گفت قربان قربان یه آدمیزاد رو دیدم که با یه ضربه چماغ دو هزار نفر رو کشته چهار هزار نفر رو زخمی کرده و ده هزار نفر رو هم فراری داده آو نمیدونین چه هیکل درشت و تنومندی داشت بعد اضافه کرد قربان ما به همچنین آدمی نیاز دادیم پادشاه دیوها که از شنیدن این حرفها تعجب کرده بود کمی مکس کرد و گفت مم. باید آدمیزاد میزاد ای باشه بله ما به اون تییاج داریم برید بدونین اینکه اونو ناراحت کنید با احترام و مهربونی بیاریدش اینجا خیلی به درد ما میخوره چندتا دیو فورا برای آوردن احمد افسانی ما به راه افتادن احمد که تازه از خواب بیدار شده بود دید که از دور چند دیو دارم میان سراغش اول خواست فرار کنه ولی دید که دیوها به اون نزدیک و نزدیک تر میشن و دیگه فرصتی برای فرار کردن نداره با خودش گفت بهتره بهتره خودم رو به خواب بزنم ببینم چی میشه بعد فورا خودش رو به خواب زد دیوها به اون نزدیک شدن و یکی از دیوها با صدای لرزون آروم گفت قربان. پادشاه باشو با شما دعوت کرده به قصرش بریم. احمد که ترس تمام وجودش را پر کرده بود توی دلش گفت چی؟ پادشاه دیو ها از من دعوت کرده به قصرش برم. نه، نه، نه، نه، نه، حتما اشتباه شنیدم. اما دوباره صدای لرزون یکی از دیوها بلند شد. قربان، قربان با شما هستم صدای منو بیشنوید پادشاه ما شما دعوت کرده که به قصرش بیایید، آیا این دعوت رو میپذیرین احمد متوجه شد که دیوها از اون ترسیدن، با خودش گفت خدای من چه دیوای مهربون و باادبی باید با اونا به قصر پادشاهشون برم اما نه ممکنه کلکی تو کارشون باشه خدایا پس چیکار کنم؟ برم نرم آه نه میرم ولی طوری رفتار میکنم که فکر کنن از من شجاحتر وجود نداره آره باید کاری کنم که از من بیشتر بدرزم بعد احمد ما بلند شد و نشست و گفت برای من آمدن بریم و چماغش رو برداشت و با دیو ها به طرف قن برافتاد. بعد ساعتی دیوها به همراه احمد افسانی ما به غصر پادشاه دیوها رسیدند. پادشاه دیوها با دیدن هیکل درشت و تنومند احمد سریع تکون داد و گفت خوش اومدی بیا بیا جلوتر. احمد که ترس تمام وجودش رو فرا گرفته بود با احتیاط چند قدم برداشت و با خودش گفت ای خدا کش نمی اومدم چه دیو وحشتناکیه ولی نه نباید بذارم متوجه ترس من بشه پادشاه دیوها گفت بیا بیا چلو دوست من احمد بر ترسش مسلط شد گفت با من چیکار داشتین پادشاه دیوها گفت دلت میخواد پیش ما باشی ها؟ احمد هرچند که از ترس داشت میگرزید اما با قاطعیت پرسید که چی بشه؟ پادشاه دیوها جواب داد خوب که بشی سردار لشکر من هرچیم بخوای از پول و جواهر گرفته تا قضا و جا و لباس ها گیرون قیمت بد میدم احمد سکوت کرد پادشاه دیوها پرسید خب چی میگی؟ احمد گفت من فعلا گرستم و قضا میخوام دیوها فورا رفتن و برای احمد انواع قضاها رو آوردن احمد هم به اندازه بیست دادن قضا خورد دیوها با ترس نگاش میگردن وقتی احمد غذاش رو خورد و سیر شد پادشاه دیوها پرسید خوب. حالا چه سیر شدی بگو ببینم قبول میکنی که پیش ما باشی و سردار لشکر من بشی؟ احمد جواب داد بله قبول میکنم دیوها از شنیدن این حرف خوشحال شدن و فریاد کشیدن احمد از ترس نزدیک بود زهر ترک بشه ولی روی خودش نیاورد پادشاه دیوها با خوشحالی به احمد گفت خوب حالا بهتره بری و استراحت کنی فردا کار مهمی با تو دارم احمد با شنیدن این حرف در دلش گفت خدا به امران کنه بعد به همراه چند دیف به افتاد تا بره و کمی استراحت کنه فردا وقتی احمد از خواب بیدار شد دید که سپونه مفصلی براش تدارک دیده شد نشست و بندزه بیست آدم سپونه خورد در این موقع یکی از دیوها به سراغش اومد و گفت قربان پادشاه منتظر شماست احمد با بیمیلی بلند شد و نزد پادشاه رفت پادشاه دیوها با مهربونی گفت صبح خیر دوست ازیز امیدوارم دیشب خوب خوابیده باشی و آماده باشی. احمد با تعجب پرسید: آماده؟ آماده چی؟ پادشاه ها گفت: آماده جنگیدن. ما فردا جنگ مهمی داریم. احمد از شنیدن این حرف خیلی ترسید ولی به روی خودش نیاورد و گفت: جنگ؟ جنگ با کی؟ پادشاه دیوها جواب داد جنگ با دیو سیاه تو باید اونو شکست بدی البته البته میدونم دونم از پاسمون بر می و بعد قاه قاه خندید احمد داشت از تر زهر ترک می شد با خودش گفت خدایا عجب گیری افتادم حالا چه خاکی بسرم به سرم کنم جنگ با دیو سیاه وای خدایا خودت کمکم کن پادشاه دیوها گفت دیو سیاه خیلی قوی و زور مانده تا حالا هیچ دیوی نتونست اونو شکست بده اما من مطمئنم توی آدمی زاد اونو شکست میدی احمد خیلی ترسید با خودش گفت آف شب که خوابیدن از اینجا باید فرار کنم بعد رو کرد به پادشاه دیوها و گفت من آمادم جنگ با دیو سیاک کاری نداره خاطر جمع باشید که اونو از پادر میرم فقط اجازه بدین برم و حسابی استراحت کنم فردا اول وقت جنگ رو شروع میکنم نگران نباشید پادشاه دیوها گفت مم. تا دمیزاد شجایی هستی دوست من با وجود تو برای همیشه از شر دیو سیا خلاص میشیم برو برو حسابی استراحت کن و خودت آماده کن برای فردا به بعد شاه دیو ها گاه گاه خندید و احمدم رفت تا حسابی استراحت کن احمد از ترس به خودش می‌لرزید. فکر روبرو شدن با دیو سیاه لحظه ای ازش دور نمیشد تنها امیدش به این بود که شب وقتی همه خوابیدن از قصر فرار کنه و خودش رو از دست پادشاه دیوها و جنگ با دیو سیاه نجات بده. خلاصه، شب که شد و دیوها به خواب رفتن، احمد چماقش رو برداشت و پاورچین پاورچین بیرون اومد و چون راه رو بلد نبود به طرف لشکر دیو سیاه رفت که اون اطراف چادر زده بوده در همین موقع یکی از دیوها اون رو دید و با عجله نزد پادشاه دیوها رفت و گفت قربان قربان چه نشستین که احمد پهلوون یتنه داره به جنگ دیو سیاه میره پادشاه دیوها سراسیمه دوید و جلوی احمد رو گرفت و گفت آ وایسا من شجاعت تا رو تحسین میکنم ولی صبر کن بزار برای فردا بعد احمد بیچاره رو به قصر بردن و احمد به ناچار تراس کشید و به خواب رفت روز بعد احمد از خواب بیدار شد و دستور داد که پاهای اونو به اسب ببندند بعد جلو افتاد سپاه دیوها هم پشت سرش به حرکت در اومدن از اون طرف هم دیوهای سیاه به حرکت در اومدن یه دفعه اسب احمد که اسب چموشی بود خیز برداشت و مثل باد به تاخت در اومد احمد که از ترس نعره می کشید به این طرف و اون طرف نگاه می کرد تا شاید بتونه خودش رو به چیزی یا جایی بند کنه و جلوی سرعت اسب رو بگیره یه دفعه چشمش به درخت پیری افتاد و اسب تا اومد از کنار درخت بگذره احمد چنگ انداخت و شاخه های درخت رو گرفت از غذا درخت پوسیده بود و با این حرکت احمد از جا کنده شد احمد از ترس نعره می کشید و درخت رو دور سرش می چرخوند. دیو سیاه وقتی احمد رو با اون دید، ترسید و به همراه دیوهای سیاه دیگه پا به فرار گذاشت و رفت و دیگه پشت سرش رو هم نگاه نکرد از فرار دیوهای سیاه همه با خوشحالی به قصد برگشته پادشاه دیوها هم اول خیلی خوشحال شد اما بعد ترس برش داشته و با خودش گفت اگه این مرد اینجا بمونه همه ما رو میکشه باید هر طوری شده اونو از بین ببریم از غذا احمد صدای اون شنید ولی به روی خودش نیابد. شب که شد، احمد متکار رو به جای خودش گذشت و روش رو پوشوند. بعد خودش رفت و گوشه پنون شد. نیمه های شب چند تا دیف سنگ بزرگی رو به کمک همه آوردن و روی متکار انداختن. بعد با ترس از اونجا دور شدن. احمد از مخفیگاه خودش بیرون اومد و رفت سریجاش درست کشید و با صدای بلند طوری که همه بشنوند گفت، اینجا چقدر پشه داره؟ آدم نمیتونه چشم روی هم بذاره. الان میرم و پدر همه دیوها مخصوصا اون بد بدجنسشون رو در میرم. اینم شد قصر؟ اه. دیوها تا این حرف رو شدیدن از ترس همگی بیرون دویدن و پا به فرار گذاشتن. احمد هم کلید اتاقها رو برداشت و به تک تک اونها سر زد. توی یکی از اتاقها دیوها آدمهای زیادی رو زندونی کرده بودن احمد تمام اونها رازاد کرد بعد با کمک هم هرچه طلا و جواهر و خوردنی بود برداشتن و به طرف خونه هاشون براه افتادن مقدار زیادی هم از این تلاو و جواهرات به احمد رسید احمد که دیگه تنبل و ترسون نبود ناز همسرش برگشت و تمام عمر رو به خوبی و خوشی سپری کرد ونچی که براتون نقل کردم افسانه ایرانی احمد ترسو بود برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایران به انتخاب و بازنویسی جمیله فراهانی گردآوری افسانه ها و قصه های آمیانی ایرانی که نزدیک به یکصد سال با کوشش و تلاش پژوهشگران ایرانی و خارجی ادامه داره و تا رسیدن به مرحله کمال هنوز راه درازی در پیش داره اهمیت این کار در اینه که چون فرهنگ آمیانه، اساساً شفاهیه و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل میشه اگه به موقع برای ثبت و ضبط و مکتوب ساختن اون تلاش نشه متاسفانه به تدریج از خاطره ها و حافظه فراموش میشه به همین علت پاسداشت و ثبت و ضبط افسانه ها و قصه های آمیانه کشور ما عنوان بخشی ارزشمند از میراث معنوی سرزمینمون امری ضروریه هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بود ویراستار الهام اشتب اجرا مهران دوستی صدابردار سمانه محمودیان تیه کننده زهرا عبدالله زاده نی دیگر برو.